شورانگیز است کاشف اقلیم خیشتن بودن به جزیره اوپای خود که در قلب ناپیدای اقیانوسی دور از همه ساحلها چشم به راه بازگشت زندانی خشکی هاست رسیدن چه آشناست این سرزمین این آفتاب و این کوه و این دریا نسیمی که از سینه این دریا پیش می آید و در من می وزد خاطرات از یاد رفته ای را در قبرستان غمگین زمیرم جان می دهد. این سرزمین با من داستانی دیرینه دارد. دل مرا با این خاک سرگذشتی مرموز است. همه ذرات این صحرا همه رنگهای این عالم با جان من حرف می زنند. چه آشنا، چه سمیمانه. در اینجا بوی یار می رسد. این دریا، این کوه، آن دهانه این همه آشنای قار، جای پای دوتن بر این راهی که از قار تا لب رودخانه پایین میآید آن دو پار ابر و آن دیدار و آن باران، چه می بینم؟ این شاخه های بلند زررت های وحشی در کف قار، این بستر، بانگه آشنا و خاطر آمیز آب، پای کوه کیست؟ من پرشکوه ترین سرودهای عالم را در ستایش تو ای دختر آفتاب خواهم سرود، من پرشورترین های عاشقی را که برخوردارترین معشوقان جهان از آن نصیبی نبردهاند برایت خواهم ساخت، ای قزل, قزل های دل من، کلماتی را در کار زیبایی های زیبای تو برخواهم گزید که سلیمان را نیز که زبان پرندگان می‌داند و از کبوتران عاشق شعر خدا را آموخته است در پیشگاه چشمان آزرده معشوق خیش چنان از شرم پریشان کند که هرگز سر از گریبان بر نتواند داشت و من در آستان مهراب تو ای قدسی مهراب معبد مهر چنانت به درد و عشق دعا خواهم گفت که خدایان همه عصرها از, از پرستندگان پارسای خیش از همه زاهدان شب زندهدار خیش و همه عارفان مشتاق و عاشقان گداخته خیش که در همه امت‌ها دعایشان گفتهاند و به گرم‌ترین اورادشان عبادت کرده اند، سرد گردند من از شرق دور سرزمین قصه های خوب عشق های نرمافتاب به هند بزرگ این اقیانوس عظیم بشری کشور جذبه و آرامش و حکمت و از آنجا به اقلیم گل و شعر پارس دشت خاموش خاطره ها هماسب و نبوغ و روشنایی سایه ایوان شکسته اهورا و از آن به کناره دجلی سبز فرات سرخ آسمان شکوه مند شمس، زمین سال خورده ابراهیم، گیلگمش، قامت شکوه نیایش دروازه بل، افسانه هزار و یک شب، حقیقت هفتاد و دو آفتاب و از آن به صحرای وحی جزیره تشنه الهام، آواز پر جبرائیل و از آن به دریای اژه، سرود ملوانان فنیقی، تخت زئوس، معبد دلفی، بارگاه خدایان المپ، آشیان دختران زئوس، شهر همر، آشیل، سقراط و اپیکور، و نوس و آمور و پرومته و از آن به سرزمین صلاح زیبایی و, زیبای و شکوه شهر کاخ ها و معوت ها، هوراس، لوکرس، سلون، میکلانج و لونرد و دوینچی و از آن به شهر فرنگ، تایمز شکسپیر، کارلیل و الیات، شانسون و دورلان، هوگو، دووینی، شاتوبریان، برکسون، پرودم، کارل، گنون، ماسینیون، سولانج بودن و روزست دلشابل، شهر عشق، شراب، هنر، فلسفه با آزادی و از آنجا به دنیای نو، تنها به سراغه، سیاهان فریادهای خشمگین و دردمند آزادی و انسانیت و هنر، سرخ زیبایی های خوب وحشی و از آنجا شتابان به سوی آفریقای سوخته و مجروح پرخواهم گشود. این اقلیم دردمندی که به یک قطر اشک گرم مانند است. و همه جا خوبترین گلهای معتر شعر را از باغهای عشق و سهراهای اساتیر خواهم چید و دست گلی خواهم بست و در یک بامداد اسفندی به یاد نخستین پرستوی بهاری که بر یک عمر زمستانی پرگشود ارمغانت خواهم آورد. ای گل صوفی ای هما ای شهد سیم شراب سوگند که در کام تشنه ای ریختی ای همسفر مجذوب ثابت قدم شایسته بر خطرها همه چیره دلاگاه و خوب دل چون شیر بی باک از ها چون باد رها از هر دام چون نیلوفر بی آلایش آب که چونان شیر با فک نیرومند شاه جانوران که فاتحانه میرود رخت و تخت خیش به دور افگندی آزاد از رنگ پندار و دشمنی بندها گسسته به هنگام زوال زندگی بیهراس مشتاق به ازم پایان دادن به آتش شنوا بیدار بی تردید بسیار کوش پر یقین با درمه اندک با این کرگدن که تنها سفر می کرد، هم سفر شدی مهراوه خوب من من از اقصای زمین میآیم، از اقلیم افسانه، دریاهای ناشناس، سرزمین های قریب من از اقصای تاریخ میآیم. من همه قرن ها را بودم من با همه پیامبران، با همه شاعران، حکیمان، پیکرتراشان، پارسایان، راهبان دیرها، گوش نشینان قهرمانان، شهیدان، عاشقان، دیوانگان زیبا، خردمندان بزرگ، با اینان همه در همه جا، همه وقت زندگی کردم. از هر اصری، همراه آوردم، از هر کسی هدیهی گرفتم و هر پیام بری به برمغانم دادند و اینک با دامنی پر از خوبترین گوهرهای زمانه دستی پر از زیباترین زیورهای زمین آمدم تا همه را هرچرا اندوخدم به معبد پاک تو ای الهی مهر مهراوه قدسی من بخف کنم از معراج آسمان ها می همه طبقات آسمان را گشتم در دل ستار باران نیم شبهای روشن و مهربان تابستان بر جاده کهکشان تاختم صحرای ابدیت را در نوردیدم. بال در بال فرشتگان در فضای پاک ملکوت شنا کردم با خدایان، ایزدان، امشاسپندان، با همه الهه های زیبای آسمان، با همه ارواح جاویدی که در نیروانه روشن و بیوزش آرام یافدند، آشنا بودم. از هر جا، از هر یک، یادی، یادگاری، برایت هدیه آوردم. از سیمای هر کدام، زیبا ترین خطرار بودم. از اندام هر یک نازمین را گرفتم از هر گلی، افقی، دریایی، آسمانی، چشماندازی رنگی دزدیدم و با دست و دامنی پر از خطها و رنگها و ترهای آن سوی این آسمان زمینی از معراج نیم شبان تنهایی به دامان مهربان تو ای دامن حریر محتاب شبهای زندگی سیاه من، فرود آمده هم، تا آن ودیعه ها که از آسمانها ها در دامن توریزم. ای خوبی خوب، آینه مهر، من به سختی و دشواری بسیار پیش از آن که تو باشی، سالها پیش از آن که صدای گامهای تو در خلوت ساکت ازلت من پیچد، آن سالها که چونان کرگدن تنها سفر میکردم. از قله کوه پارناس در یونان افسانهای بالا رفتم، دیگران همه در نیمه راه بازی استادند، اما من که در بودن خیش کمین تو را داشتم، که در انتظار تو زندگی می کردم و چشمان چشم به راه تو را در پای آن کوه می دیدم و تو را در پس پرده غیب همواره می آفدم. با تو پیش از تو آشنایی داشتم، با تو، پیش خیش گفتگوها می کردم به صعودم ادامه دادم خسته و پای پر و دشوار اما برای تو باید میرفتم چه میدانم من افسانه من چه میدانم؟ شاید به جستجوی تو میرفتم که گفته بودند بر بالای کوه پارناس نه دختران زئوس زندگی می کنند الهه عشق الهی شعر، الهه موسیقی، الهه نقاشی، الهه عشق، الهه شعر، الهه موسیقی، الهه نقاشی، الهه عشق، الهه شعر، الهه موسیقی، الهه نقاشی، الهه عشق، الهه شعر و رسیدم. دختران زئوس بودند و تو نبودی. و سراغ تو را از آنان گرفتم، ندانستند اما تو را می شناختند هر کدام خود را به گریبان من میافکند افکند که مهراوه تو شبیه من است همه میگویند که مهراوه با تو شبیه است پدرم زئوس میگفت تو دخترم خلق و خوی مهراوه آن خدای مشرق را داری تو دخترم سیمای مهراوه او را داری و من سخن هیچ یک از دختران زئوس را باور نکردم اما رخصاره هفایستوس مرا به تردید دفکند از نه دختر زوس که هر یک الهه یکی از نه هنر زیبای جهانند شعر را، موسیقی را، نقاشی را، پیکر را قارت کردم من یک سلطان جبار شرقیم آن سالها در قلعه دیوان اسیر نبودم آن چرا میخواستم به زور شمشیر و ستم از ضعیفان و بیدفاعان می بودم. هر نه هنر زیبا را از دست دختران معصوم زئوس به زور گرفتم و در خرجین خنگ باد پای سبک سیرم نهادم و بر روی جادی نور در سهرگاه شسته پا به طلوع رو به مسیر مشرق خورشید تاختم تا زیباترین گنجین های مغرب را که یونانیان مغرور بدان می‌نازند به سرزمین آفتاب آورم و به معشوقم هدیه دهم از فراز قله کوه پارناس به شتاب شاهین بازگشتم و در حالی که فریاد شیون و ناله دختران قارت شده زوس آسمان را خبر می کرد من زحمت آن را که سری به قفا برگردانم به خود ندادم و سالها بی یک لحظه درنگ بی یک منزل آسودگی تاختم و جز در برابر گلدسته زرین و خوشنگار معبد مهر پرستی که از قلب شرق دیدار من سر برداشته بود و در پیش راه سفر تنهای من ایستاده بود، نه ناگهان خستگی عمری تلاش و کوفتگی سالیانی سفر از شرق به غرب و گریز از غرب به شرق مرا از زین مرکبم فرو انداخت و در کف سنگ فرشهای زرین معبدم نقش زمین کرد. دست و رو در آب آن استخر زمردین مسجد شستم. و خورجین انباشتم را به صد شوق برگرفتم و آهسته آهسته حراسان و پر از اضطراب خود را به آستانه مهراب کشندم. تاریک بود. نمی دیدم. شمعی روشن کردم و در پرتو آن در پرتوب آن چهره مهراب را دیدم. شناختم. دیدم که دختران زئوس همه دروغ می گفتند. و چه خجلتی دیدم که آنچه در این خورجین آوردم شرمآور است آن را کتمان کردم و تا بر من نخندد در برابر چشمان او نگشودم و آن را همچنان که آورده بودم به قصر نخستین زئوس در سالونیک در جزیره کرت بازپس فرستادم که آنچه را در طول عصرها و نسلهای بسیار، پروازی ترین اندیشه ها، زیبا آفرینترین احساسهای فرزانگان، فیلسوفان، نوازندگان، نویسندگان، شاعران، پیکر تراشان. و سازان و اساتیر پردازان آفریننده یونان اصل نور و طلا به دختران زئوس هدیه کرده بودند، من آن همه را در چشمهای او، در همه اندامهای او، در بالای او، در سیمای او، در آوای او، و در همه لبخند و نگاه او، در غم و شادی او، و در خشم و مهر او، و در هر لحظه دیدار او، میبینم، مییابم، میشنوم، میبویم، میچشم و همچون کوزه گرم و خشک و قبار گرفته یأس از این سرچشمه های زلال و سرد و خوشگواری که از چشم سار بودن او میجوشد پر میشوم، لبریز میشوم، سرد میشوم، زدوده میشوم، خوب میشوم، آرام میشوم، راضی میشوم. خدا را دوست میدارم، دنیا را دوست میدارم. همه رنگ ها را دوست می‌دارم، همه پیغمبرها را دوست می‌دارم، همه خدایان را دوست می‌دارم. همه قهرمانان تاریخ را دوست میدارم همه عاشقان را دوست میدارم همه فصلها را همه عصرها را همه شبها را همه صبحها را همه باتها را همه جویبارها را همه سبزها سبززارها پرندها ستارها سفرها بدها خوبها بچهها بیمارها ضعیفها، عزیزها کشورها عبرها آسمانها همه سرزمین ها ملت ها همه جهان را دوست می‌دارم پر می‌شوم پر می شدم. پر می‌شوم پر می‌شوم و چه می‌داند که پر شدن یعنی چه پر شدن یک انسان خالی یعنی چه بارش تند بارانی تندراسا، سائق زن با قطره سرد و درشت برکشت زاری تشنه زرد و خشک که در کبیری سوخته و ساکت عمری در انتظار باران سر به آسمان برداشته است چه حادثه ای است که میداند چه میداند چه میداند من میدانم مهراوه من میدانم ای باران تند بهاری ای ابر باران خیز اسفندی که دامن پر از بهارت را ناگاه بر سرم افشاندی ای ابر سپید سبوک بال اسفندی که ندانستم از کدامین افق آمدی از کدامین دریا به نیروی آفتاب دوست داشتن برخواستی و بر بالای سرم چتر سپید مهر افراشتی و با ناز انگشتان بارانت آن تک درخت خشک بی برگو را که از قلب تافته کبیری که و سوخت قامت کشیده بود و سر به دوزخ برداشته بود باغش کردی و در همه جنگل های زمین تاق من میدانم مهراوه من و تو نمیدانی و تو نمیتوانی دانست که تو... گل نازی که در گلخانهی رو ای قناری زرین بالی که در قفسی آواز خانده ای. و من میدانم كه که جگن صبور و لجوج این را آتشخیزم که در طوفان رو كه که در آتش شاخ و برگ افشندم که سیلی ها خوردم از بات تبرها تبر ها خوردم از هیزم شکنان که برای تنور آبادی های این سرزمین جگنها را، گزها و تاخها را از ریشه میزنند که رویده کبیرم و تنها و تنهای تنها نخزم، نخار، جگنم، جگنی بیباک و مقرور که هرگز با کبیر خو نکردم و علا رغم حول و حریق این زمین دوزخی تن بر خاک ندادم، گبار ندادم و سرنوشتم به جرم گستاخی در برابر این جهنم پست که زادگاه خزه ها و خزنده هاست تنهایی بود و زندگیم خاموشی و سرنوشتم خاکستر در آتش تنوری که به سوختن من نان میپزند که به سوختن ما نان میپزند و تو مرغ آواره آن مرغ آواره کبیر که از مرغدان دان روستاییان کبیر بگریخته ای که در آسمان بیپناه کبیر که از سقفش آتش میبارد و از کفش خاک برمیخیزد بر بلند ترین شاخه آزاد و بی پیوند این درخت بنشستید دل من که به عشق ایمان داشت تا که آن نقمه جان بخش تو از دور شنید اندر این مزرع آفت زده شوم حیات شاخ امیدی کاشت چشم بر راه تو بودم که تو کهی می آیی؟ بر سر شاخه سر سرسبز امید دل من که تو کهی می دل این تک درخت سکوت، تک درخت خشک غرور آشیان بستی و آسمان بحت کبیر خاموشم را از شور و فریاد آوازهای کودکانت جوجگان نوپر نوپروازت پر کردی و سقف کوتاه این آسمان بیگان با ما را از بالای سرم برداشتی و زمین تافته این کبیر آتشناک را به بارانهای سهرگاهی شستی و خاک تیری اقلیم زندگانی را با مخمل سبز سزی پوشاندی و چه میتوانم گفت که چه دیر کردی؟ چه میتوانی دانست که چه کردی؟ تو پرم کردی تو لبریزم کردی تو آبادم کردی تو آزادم کردی و من پر شدم و من لبریز شدم و من آباد شدم و من آزاد شدم و چه میداند که سرزمین بایر درون یک روح چیست و چه میداند که کوزه خالی و قبار گرفته قلب یک سینه چیست و چه میداند که, می که شاه باز آسمانی پرواز در بند و گرفتار یک تنهای محزون چیست و چه میتواند دانست که یک انسان چگونه پر میتواند شد یک دل آباد چگونه میتواند شد یک گنج پنهانی از ویرانه های یک بودن ویران چگونه میتواند پدیدار گشت و من مهراوه من سرگذشت لبریزی خیش و سرنوشت آبادی خیش و قصه کند و کاو گنج پنهانی خیش و حدیث اعجاز تو در دیگر دیسی خیش و حکایت پوست انداختن از بایزیدی خیش و جوش کردن یک باری بیشمار نهرهای قریب از دوردست صحراهای پر افسانه بیگانه خیش و داستان سفرهای شبانه و پروازهای بال در دربال توی نیم شبانه خیش و اسطوره معراجهای تماشایی خیش و اعجازهای پیامبرانه خیش و وحی خیش و الهام خیش و قرآن خیش و نبوت خیش و خداوندگاری خیش و آفریدگاری خیش همه را همه را همه را نکته به نکته مو به مو شرح کنم با قلمی فرزند آفتاب با کلماتی زاینده مسیح با کلامی رشگ رب و نوع شعر به آهنگی که خون در دل ناهید آورد، با آتشی که ذرات خاک اندام زرتوشت را برقصاند با فصاحتی که علی را از خلبت نخلستانهای شبهای درد مندش بیرون کشد با شوری که حلاج را بر سر دار بیقرار کند با نرمایی که بر سیمای مریم عرق بنشاند با عطری که گلهای اشوگر بهاران را برگرد آن گل صوفی وشی که جز من به خدا و همه آفرینش خدا نخستین و آخرین سخنش نفیه است به تواف آورد با لطافتی که مخمل نرم پار ابرهای آسمان تابستان را بدان تشبیه کند با صداقتی که سپیده صبح بهار از شرم افق را گلگون کند با اعجازی که صمیمیت الهام را دارد و شکوه وحی را که الهام است و وحی است و آن جبریل سبز بر دل این امی عشق ریخته است و من محرابه من همه آیات آسمانی را که بر لبان خدا رفته است از نخستین روز که با آدم سخن گفت تا آن پنج شنبه بزرگ که لبان محمد خاموش گشت خواهم جست و از آن میان اعجازی ترین آیات خداوندی را برای تو برخواهم گزید و من مهراوه من از هر دلی که از یادی تپیده است و از آن ترانهی رویده است سراغ خواهم گرفت و از آن میان آنچرا که به کار دل من و تپیدنهای دل من آید جستجو خواهم کرد و اگر یافتم و اگر در انبوه زیباترین ترین ترانه ها دیوان ترین قزلها و مشتاق ترین کلمات عاشقانه که فرهنگ گرانبه های دلهای خوبند و مذهب زیبای دوست داشتن آنچرا که در خود خوبی های تو شایسته زیبایی های تو باشد یافتم برخواهم گرفت و دیوانی که در متح شمس کهکشان همه استارگانم منظومه آفرینشم خواهم سرود به کار خواهم گرفت و من، مهراوه من، به همه معبتهای جهان، به همه سومعه های تاریخ از شرق دور تا دورترین اقصای مغرب زمین سر خواهم کشید و در انزوای پر از قدس و اخلاص و نیاز مشتاقترین پرستندگان خدا، ترین بندگان خدایان خواهم ایستاد و به راز و نیازهای دلهای دردمند به دعاهای گریه آلود جانهای آتش گرفته و به اورادی که از نهاتهای پرالتها به خلوت پارسایی که پرستیدن را برزیستند و سوختن را برساختن و جنون را برخرد و آخرت او را بر دنیای خیش برگزیدند و دست بر دامن او، سر بر زانوی او، نقش دیوار مهراب او جهان و زندگی جهان و هر چرا آن است رها کرده اند گوش فرا خواهم داد و از میان این گرم ترین دعاها، زلال ترین اوراد و پاک مناجات پنهانی دل با معبود که همچون بخارهای خیزی در سراسر زمان و در پهنه زمین از سطح دریای آبهایی که بر آن آفتاب گرم و نیرومند عشق تافته است و آسمان برمیخیزند و به سوی خدا بال می زیباترین زیبا ترین، خوش رنگ ترین، نرم ترین و روحانی ترین پرستوهای اوراد را و قمریان دعا را سید خواهم کرد و برایت هدیه خواهم آورد و من به من همچون شم، که هستی خیش را در کار گریستن قطر قطر می گدازد و می بارد. هجده سال گذشتم را همچنان که در کار مردم و عشق آزادی کردم هجده سال دیگرم را کلمه کلمه خواهم ساخت و در ستایش شمس تبخیز خیش خواهم سرود و چنان قامت زیبای تو را ای آفتاب در زیر باران گلهای رنگا رنگ و خوش عطر شوق و شورها و تب و تاب ها، و دعا ها و ورد ها، و ترانه ها و قسیده ها، و قزل بیتاب و زیبا و پرشکوه هم غرقه سازم، تا... تا این بیتوی سیاه و خالی را از تو لبریز کنم. تا این زندان را بر گونه خانه من بیارایم، تا بر سیمای زشت و بیگانه این قربت، خطی از سرزمین میهنمان رنگی از رنگهای دیار من نقش کنم. ای کشور غیب وسوسی بس تو مرا بر روی این زمین آرام نمیگذارد. ای میهن افثانهی من، سرزمین همه آرزوهای بلند، شهر خدا، شوق تو، زیستن را در زمین دشوار کرده است. ای خیشاوند راستین من که هرگز با تو نبودم ای مخاطب من که هیچگاه با تو سخن نگفتم بی تو با بیگانگی و سکوت می میرم میهن من مهراوی من انتظار گم کردن توست قربت قم دوری تو استراب درد بی ماندن غم قم داغ بی تو زیستن عشق آرزوی تو، شعر گفت تو مذهب راهی به سوی تو عرفان آشنایی تو من با همه نگاه ها بودم در همه دلها گداختام در همه نژات ها هم سفر تاریخ هم نشین اساتیر بودم مهراوی من، میهن من در نامهای توی الهه ها تو را میپرستیدم. من آنها را از تو پر می کردم. در سیمای قهرمانان تو را عاشقان می ستودم. در خاک سرزمینم با تو عشق می برزیدم در چشمهای معشوقم تو را می دیدم. در اندام بتم تو را می ستودم. چه می گویم؟ در لبخند محتاب در نوش خند سحر، در نجوای بادها در سر شاخه های سپیدار سپیدارهای بلند در زمزمه جویبار در دل های باغ در حلقوم هر دردمندی تو را نالیدم در چنگ هر نوازنده تو را نواختم در زبان همه شاعران تو را سرودم، در قلم همه نقاشان تو را نگاشتم، در تیشه همه پیکر تراشان تو را ساختم، در خلوت تنهایان برای تو گریستم، در همه دلهای عاشق به خاطر تو تبیدم، همه چشمهای خوب از دل من اشک ریختند، همه آههای ناکام از زینه من برخواستند، در همه بی تابی ها، های ناشناس، حسرت های مچهول، های تشنه، جستجوهای بی همه من بودم، همه تو بودی هنر را به جستجویت فرستادم و هنوزت نیافته است عشق را در پیت روان کردم و هنوز آواره است زیبایی ها از تو نشان می و هنوز نشداخدند كجایی كی ای آشنای ناشناس ای خویشاوند بیگانه ای همیشه با من بیتویی بد است قربت طاقت فرساست